میگه کی میگه تو خانه دل کی میگه تو خانه دل با این هم مشکل کی میگه تو دوره‌ای که دود گاز و ایلینو غزا شده دیگه دل داره بگه عاشق و مبتلا شده تو دلی که مهربونی بکنه تو جوونی که جوونی بکنه از اون کارا که میدونی بتونه ندیگه ندیگه دل با کسی کار نداره دیگه دل حواسه وصللت دلدار نداره کی دیگه کی دیگه یهسه حال و دل داره مگه مش دلته. دل شب که میخوام خونه برم دل میگه امشب حاضرم تو نظم شب بیدار بشم خودم سر حالت میارم اما خودم خوب میدونم از خستگیت خواب میمونم صبح که بیدار میشم سر دلم کلا میذارم با با حرف دل دیگه قدیمی شد یکی مینا ز دخل کمه خود یکی میگه ساب کار حقمو خور وقتی از صبح تا شب ما داریم جون میکنیم دیگه هست نداریم شبا شب کاری شب کنیم ندیگه ندیگه دل ما نداره دل ما مونده دیگه واسهش جا نداره ترافی که شلوق جون به لب ما میاره کودلی که سر به سر ایالش آدم بذاره کودلی که مهربونی بکنه خود جوونی که جوونی بکنه نصف شواش شیطونی بکنه ندیگه ندیگه جوون ها بی ساله پنجه پسرن اما از زن بیزارن مردوی این زمونه دو سر خود میزنن دیر بار زندگی همگی آبستنن یاد قدیمی یا آبه اون روزا حتی پیره ده با تا عقد و سیغی تو منزلش حرم سراده آن. با همشون بازی میکرد از دم خوب رازی میکرد دمدمای صبح که میشد ماشالا بازم اشتها ها ولی حالا همه بیرمک شدم توی قسط و چک و زبد قب شدم گرفتار قبض آب و برد شدم ندیگه ندیگه دل با کسی کار نداره دل صاب مرده ما گرمی بازار نداره کی میگه؟ کی میگه؟ میشه مهربونی کرد کی میشه؟ باروغن نباتی جKKبونی کرد کی میگه؟ کی میگه؟ میشه مهربونی کرد کی میشه؟ باروغن نباتی جببونی کرد